رفتیم و زما زمانه آشفته بماند با آنکه ز سدگ وهر یکی سپته نماند افسوس که صد هزار معنی دقیق از بیخردی خلق ناگفته بماند روزیست خوش و هوا نگرمست و نسرد ابر از رخ گلزار همی شویت گرد بلبل بل به زبان حال ما با گل زرد فریاد همی زند که می باید خرد زن پیش که قمهات شبیه خون آرند، برمای که تا باده گلگون آرند، تو ای قافل نادان که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند. از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جاه و جلالش نپزود، و از هیچ کسی نیز و گوشم نشنود، که این آمدن و رفتنم از بهره چه بود.